مصنوی معنوی مولوی برنامه پاه و پنجم واسیت کردن امران جفت را بعد از مجامعت، که مرا ندیده باشی و مگردان هیچ از اینها دم مزن تا نیاید بر من و تو صد هزن عاقبت پیدا شود آثار این چون علامت ها رسید ای نازنین در زمان از سوی میدان ها می رسید از خلق و پر می شد هوا شاه از آن حیبت برون جستان زمان پا برهنه کین چه غلغل هاست هان نسوی میدان چه بان گست و غریو که از نهیبش میرمد جنی و دیو گفت امران شاه ما را آمر باد قوم اسرائیلیانند از تو شاد از عطای شاه شادی میکنند. رقص می آرند و کفها می زنند گفت باشد که این بود اما ولیک وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک. ترسیدن فرعون از آن بانگ این صدا جان مرا تغییر کرد، از غم و اندوه تلخم پیر کرد. پیش می آمد سپس می رفت جمله شب او همچو حامل وقت ز. هر زمان می گفت ای امران مرا سخت از جا برده است این نعره ها، زهره نه امران مسکین را که تا باز گوید، اختلاط جفت را که زن امران به امران درخزید تا که شد استاره موسا پدید هر پیامبر که در در رحم نجم او بر چرخ گردد منتجم پیدا شدن ستاره موسیٰ علیه السلام بر آسمان و غریبه منجمان در میدان بر فلک پیدا شدن استارهش کوری فرعون و مکر و اش روز شد گفتش که ای امران برو واقف آن غلغل و آن بانک شو راند امران جانب میدان و گفت این چه غلغل بود؟ شاهنشاه نخوافت هر منجم سر برهنه جامه‌چاک همچو اصحاب عزا بوسیده خاک همچو اصحاب عزا آوازشان بود گرفته از فقان و سازشان ریش و مو برکنده رو بدریدگان خاک بر سر کرده خونپر دیدگان گفت خیر است این چه آشوب است و حال بد نشانی می دهد منحوس سال آذر آوردند و گفتند ای امیر کرد ما را دست تقدیرش اسیر. این همه کردیم و دولت تیره شد دشمن شه هست گشت و چیره شد شب ستاره آن پسر آمد آیان، کوری ما بر جبین آسمان زد ستاره آن پیانبر بر سما ما ستاره بازگشتیم از بکا با دل خوش شاد امران و از نفاق دست بر سر می بزد کاه الفراق کرد امران خیش پرخشم و ترش رفت چون دیوانگان به اقل و حوش. خیشتن را اعجمی کرد و براند، گفته های بسخشن بر جمع خاند. خیشتن را ترش و غمگین ساخت او، نردهای بازگونه باخت او. گفتشان شاه مرا بفریفتید، از خیانت و از نشکیفتید. سوی میدان شاه را انگیختید. آبروی شاه ما را ریختید. دست بر سینه زدیدن در زمان شاه را ما فارغ آرم از غمان شاه هم بشنید و گفت ای خاینان من برآویزم شما را بی امان خیش را در مزهکه انداختم مالها با دشمنان در باختم تا که امشب جمله اسرائیلیان دور ماندند از ملاقات زنان مال رفت و آبرو و کار خواب این بود یاری و افعال کرام سالها ادرار و خلعت می برید مملکتها را مسلم می خورید رایتان این بود و فرهنگ و نجوم تابل خارانید و مکاری دو من شما را بردارم و آتش زنم بینی و گوش و لبانتان برکنم من شما را حیزوم آتش کنم عیش رفته بر شما ناخش کنم سجده کردند و بگفتند ای خدیو گر یکی کرد زما چربید دیو سالها دفع بلاها کرده ایم و هم حیران زانچه ماها کرده ایم فوت شد از ما و حملش شد پدید نطفه جست و رحم اندر خزید لیک استغفار این روز ولاد ما نگه داریم ای شاه و قباد روز میلادش رسد بنده ما تا نگردد فوت و نجهد این قضا گر نداریم این نگه ما را بکش ای غلام رأی تو افکار و حش. تا به نه مه می شمردو روز روز تا نپرد تیر حکم خسم دوز بر قضا هر کو شبیخونآورد سرنگون آید ز خون خود خورد چون زمین با آسمان خص می کند شعره گردد سر ز مرگ برزند نقش با نقاش پنجه می زند سبلتان و ریش خود بر خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر بعد نه ماه برون آورد تخت سوی میدان و منادی کرد سخت که زنان با تفلکان میدان روید جمله اسرائیلیان بیرون شوید آنچنان که پار مردان را رسید، خلعت و هر کس از ایشان زر کشید. هین زنان امسال اقبال شماست، تا بیابد هر کس چیز که خواست. مرزنان را خلعت و سلت دهد، کودکان را هم کلاه زر هد. هر که او این ماه زاییده است، هین گنج ها گیرید از شاه مکین آن زنان با تفلکان بیرون شدند شادمان تا خیمه شه آمدند هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر سوی میدان غافل از دستان و قهر چون زنان جمله بد دو گرد آمدند هرچه بود آن نر ز مادر بستودند سربریدندش که این است احتیاط تا نروید خسم و نوزاید خوبات به وجود آمدن موسا و آمدن اوانان به خانه امران و وحی آمدن به مادر موسا که موسا را در آتش انداز خود زن امران که موسا زاده بود دامن اندر چید از آن آشوب و دود آن زنان قابله در خانه ها بهر جاسوسی فرستاد آن دغا غمز کردندش که اینجا کودک است نامد و میدان که در وهم و شک است اندر این کوچه یکی زیبا زن است کودک دارد ولیکن پرفن است پس اوانان آمدند او طفل را در تنور انداخت از امر خدا وحی آمد سوی زن زان با خبر که ز اصل آن خلیل استین پسر اسمت یا نار و کونی باردن لا تکونن نارو هرن شاردن زن به وحی انداخت او را در شرر بر تن موسا نکرد آتش اثر پس اوانان بی مرادان سو شدند باز غم مازان کزان واقف بودند با اوانان ماجرا برداشتند، پیش فرعون از برای دانگ چند، که اوانان بازگردید آن طرف، نیک نیکو بنگرید اندر غرف وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افگن. باز وحی آمد که در آبش فگن. روی در امید دار و مومکن. در فگن در نیلش و کن ایتمید من تو را با رسانم رو سپید. این سخن پایان ندارد مگرهاش. جمله می پیچد در ساق و پاش صد هزاران طفل می کشت او برون موسی اندر صدر خانه در درون از جنون می کشت هرجا بود جنین از حیل آن کور چشم دوربین اژدها بود مکر فرعون آنود. مکر شاهان جهان را خورده بود لیک لیکاز و تر آمد پدید همورا هم مکر او را درکشید اژدهها بود و اصا شد اژدهها این بخورد آن را به توفیق خدا دست شد بالای دست این تا کجا تا به که الیه المنتها کان یکی دریاست غور و کران جمله دریاها چو سیله پیش آن حیله ها و چاره ها گر اجده پیش پیش الله آنها جمله لاست چون رسید اینجا بیانم سرنهاد محو شد والله اعلم آن آنچه در فرعون بود آن در تو هست لیک اش درهاد محبوس چه هست ای دریغ این جمله احوال تو است تو بر آن فرعون برخواهیش بست گرز تو گویند وحشت زایدد ورز دیگر آن فسانه آیدد چه خرابت می کند نفس لین دور می سخت این قرین آتشت را حیزم فرعون نیست ورنه چون فرعون او شعلا زنیست حکایت مارگیر که اجده های فسرده را مرده پنداشت و در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد یک حکایت بشنو از تاریخ گوی تا بری این راز سرپوشیده بوی مارگیر رفت سوی کوهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار گرگران و گرشتابنده بود آن که جوینده است یا بنده بود. در طلب زن من تو هر دو دست که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفت شکل و ادب سوی او میغیج و او را میطلب. گه با گفت و گه خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شه. گفت گفتان یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش هر حس خود را در این جستن بجد هر طرف رانید شکل مستعد گفت از روح خدا لا اسو اصوب همچو گم کرده پسر رو به سو بسو. از ره حس دهان برسان شوید، گوش را بر چار راه آن نهید. هر کجا بوی خوش آید، بو برید، سوی آن سر کاشنای آن سرید. هر کجا لطف ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی بی این همه دریای است، ژرف جذو را بگذار و برکل دار ترف جنگهای خلق بهر خوبی است برگ بی برگی نشان توبی است خشمهای خلق بهر آشتی است دام راحت دایما بیراحتی است هر زدن بحر نوازش را بود، هر گله از شاکر آگه می کند. بوی بر از جوزو تا کل ای کریم، بوی بر از زد تا زد ای حکیم. جنگ ها می آشتی آرد درست، مارگیر از بحریاری مارجست، مار جوید آدمی، غم خورد بهر حریف بیغمی او همی جستی یکی ماری شگرف گرد کوهستان و در ایام برف اژدههایی های دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر زبیم مارگیر اندر زمستان شدید مار می جست اجده های دید مارگیر از بحر حیرانی خلق. مارگیرد ایند نادانی خلق. آدمی کوه است چون مفتون شود. کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی. از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را. آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقه بدوخت. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران است و دوست؟ مارگیر آن اجده را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. اجده های چون ستون خانه می کشیدش از پای. دانگانه کشده های مرده آوردم در شکارش من جگرها خوردم او همه مرده گمان بردش بلیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک او ز سرماها و برف افسرده بود زنده بود و شکل مرده می نمود عالم افسرده است و نام او جماع جامد افسرده بود، ای اوستاد، باش تا خورشید هش رایت ایان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون اصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. پارهی خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخ. مرد از این سو اند و زان سو زندند، خاموش این جا و طرف گویندند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اجده کوهها کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن بکف مومی بود، باد هم مال سلیمانی شود، بر با موسی سخندانی شود ماه با احمد اشارت بین شود نار ابراهیم را نسرین شود خاک قارون را چماری درکشد استن هننا آید در رشد سنگ بر احمد سلامی میکند کوه یحیا را پیامی میکند ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم. با شما نامهرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید. محرم جان جمادان چون شوید. از جمادی عالم جانها روید. غلغل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیه جمادا آیدد. وسبسه تعویل ها نر بایدد، چون ندارد جان تو قندیل ها، بحر بینش کرده ای تعویل ها، که تسبیح ظاهر کی بود، دوی دیدن خیال غی بود، بلکه مر بیننده را دیدار آن، وقت عبرت می کند تسبیح خان، پس چو از تسبیح یادت می دهد، آن دلالت همچو گفتن می بود. این بود تعویل اهل اعتزال، و آن کس کو ندارد نور حال. چون حس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی اعجمی. این سخن پایان ندارد. مارگیر می کشیدان مار را با سد زهیر تا به بغداد آمدان هنگام جو تانهد هنگامه بر چار سو. بر لب شد مرد هنگامه نهاد غلغله در شهر بغداد افتاد مارگیر اجده آورده است بلعجب نادر شکاری کرده است جمع آمد صد هزاران خام ریش سید او گشته چو او از ابلهیش منتظر ایشان و هم او منتظر تا که جمع آیند خلق منتشر مردم هنگامه افزونتر شود که دیو توزی نیکوتر رود. جمع آمد صد هزاران جاشخا حلقه کرده پشت پا بر پشت پا مرد را از زن خبر نی ززدهام رفته در همچون چون قیامت خاص و آم چون همه را راقه جنبانید او می کشیدند اهل هنگامه گلو وجده ها که زمهری رفصرده بود زیر صد گونه پلاس و پرده بود بسته بودش با رسنهای غلیظ احتیاطی کرده بودش آن حفیظ در درنگ انتظار و اتفاق تافت بر آن مار خورشید عراق آفتاب گرم سیرش گرم کرد رفت از اعضای او اخلاط سرد مرده بود و زندگش تو از شگفت، اجده بر برخیش جنبیدن گرفت. خلق را از جنبش آن مردمار، گشتشان آن یک تهیر صد هزار. با تهیور نعره انگیختند، جملگان از جنبشش بگریختند، می او بند و زانبانگ بلند، هر طرف می رفت چاقا چاق بند. بندها بکسست و بیرون شد ز زیر، اجده های زشت قران همچو شیر. در حضیمت بس خلایق کشته شد، از فتاده کشتگان ست پشته شد، مارگیر از درس بر جا خوش گشت که چه آوردم من از که و دشت گرب را بیدار کرد آن کور میش رفت نادان سوی اسرائیل خیش اجده یک لقمه کرد آن گیچ را سهل باشد خونخوری حجاج را خیش را بر استن پیچید و بست، استخان خرده را در هم شکست. نفستش در هاست او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. گربی آبد آلت فرعون او، که به امر او همه رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند راه سد موسی و صد هارون زند کرمک است آن ها از دست فقر پشهیی گردد ز جاه و مال سقر ها را دار در برف فراق هین مکش او را به خورشید عراق تا فسرده می بود آن اجدهات لقمه اویی چو او نجات مات کن او را و ایمن شو مات رحم کم کن نیست او زهل سلات کانتف خورشید شهوت برزند آن خفاش مردریگت پرزند می کشانش در جهاد و در قتال مردوار الله و یجزی کلو چونکه آن مرد اجده را آورید در هوای گرم و خوش شد آن مرید لا آن فتنها کرد ای عزیز بیست همچندان که ما گفتیم نیز تو تمع داری که او را بی جفا بسا در وقار و در وفا هر خسی را این تمنا کای رسد موسی باید که اجدرها کشد صد هزاران خلق زجدرهای او در حزیمت کشته شد از رای او